روزی روزگاری در ساحل رودخونه ای زن و مردی زندگی می‌کردند که دختری داشتند از اونجایی که اون تنها فرزند خانواده و در عین حال بسیار زیبا بود والدینش هرگز نتونسته بودند اون رو به خاطر اشتباهاتش تنبیه کنن و یا رفتار خوب بهش آموزش بدن وقتی که پای کمک کردن توی کارهای خونه به میون می اومد وقتی که مادر از دخترش میخواست که در پختن شام یا شستن ظرف ها کمک کنه، اون مادرش رو مسخره می کرد. تنها کاری که دختر انجام میداد، این بود که اوقاتش رو به بازی کردن با دوستهاش سپری کنه و از اونجایی که وجود اون برای والدینش بیفاگده بود، انگار که اصلا دختری ندارن. به هر حال، روزی مادر به قدری خسته به نظر می رسید که دختر خودخواه به خودش اومد و پرسید که آیا کاری هست که اون بتونه انجام بده تا مادرش قدری استراحت کنه یا نه؟ زن مهربان به قدری از این پیشنهاد متعجب شد و خوشحال که دختر شرمنده شد و در اون لحظه اگر ازش میخواستن حاضر بود کل خونه رو تمیز کنه. اما مادرش فقط ازش خواهش کرد که تور ماهیگی رو به ساحل ببره و بعضی از سورا هایی که در اون به وجود اومده بود رو تعمیر کنه، چون پدرش قصد داشت اون شب به ماهیگیری بره. دختر تور رو برداشت و به قدری خوب کار کرد که دیگه هیچ سوراخی در اون دیده نمیشد. اون کاملا به خودش افتخار می کرد. اگرچه کاملا سرگرم شده بود، چون هر کسی که از اون جارت میشد باهاش صحبت می کرد. اما حالا که خورشید کاملا بالا اومده بود، و اون سرگرم پیچیدن تور بود تا اون را دوباره به خونه ببره همون موقع صدای پاشیده شدن آب رو از پشت سرش شنید وقتی که دورو رو نگاه کرد ماهی بزرگی را دید که به هوا پریده بود دختر تور رو با هر دو دستش گرفت و اون را در آب همون جایی که حلقه های آب پشت سر هم پخش می شدن فرو برد و با خوششانسی ماهی رو بیرون کشید و فریاد زد آه چقدر قشنگی اما ماهی بهش نگاه کرد و گفت بهتر منو نکشی چون اگه این کارو بکنی من تو رو تبدیل به ماهی میکنم دختر با تحقیر بهش خندید و مستقیما پیش مادرش رفت و با خوشحالی گفت ببین چی گرفتم اما خوردن اون تقریبا ماهی تاسفه چون که میتونه حرف بزنه اون گفت که اگه اونو بکشم منو تبدیل به ماهی میکنه مادرش التماس کنان گفت آه این ماهی رو به همون جایی که بود برگردون شاید یک جادوگر باشه اگه اتفاقی برای تو بیفته منو پدرت میمیریم. دختر گفت اه چه حرف پوچی میزنیم مادر موجودی مثل این چه قدرتی میتونه روی من داشته باشه. به علاوه من گرستم و اگه خیلی زود شام نخورم عصبانی میشم. بعد بیرون رفت تا گل جمع کنه. و اون رو لای گیسوانش بگذاره. یک ساعت بعد صدای بوخی که دمیده میشد بهش فهموند که شام آماده است. دختر فریاد زد نگفتم که اون ماهی خوشمزه است و قاشقش رو توی ظرف کرد و قطعه بزرگی برداشت. اما به محض اینکه ماهی با دهانش تماس پیدا کرد لرزش سردی به اندامش افتاد. سرش پهن شد، چشمهاش به کنار سرش رفتند و دستها و پاهاش به کنار بدنش چسبیدن و دچار تنگی نفس شد. با جهشی بلند از بین پنجره بیرون پرید و خودش رو به داخل رودخونه پرد کرد. اونجا حالش بهتر شد و تونست به دریا که همون نزدیکی ها بود شنا کنه. همینکه که به اونجا رسید چهره غمگینش توجه بقیه مای رو جلب کرد. اونها دورش حلقه زدند. و خواهش کردن که داستانش رو برای اونها بازگو کنه. تازه وارد به محض حرف زدن آب شور زیادی رو می و این به اون خاطر بود که در یک لحظه نمیتونست به خوبی راه و رسم ماهی بودن رو یاد بگیره. اون گفت من اصلا ماهی نیستم، یه دخترم. حد تا چند دقیقه قبل که یه دختر بودم فقط و سرش رو به زیر انواج برد تا اونها گریهش رو نبینن. یک ماهی تون پیر گفت فقط باور نکردی که اون ماهی رو که گرفتی قدرت عملی کردن تهدیدش رو داشته باشه. خب ناراحت نباش. این برای همه ما اتفاق افتاده. واقعا هم زندگی بدی نیست. شاد و خوشحال باش و با ما به دیدن ملکی ما بیا که در قصری زیباتر از قصرهای های شما زندگی میکنه. ماهی تازه وارد کمی از این سفر می ترسید. اما از اونجایی که از تنها موندن بیشتر وحشت داشت دومش رو به نشونه موافقت تکون داد و همه مایی راهی شدن مردمی که روی سخراها یا کشتیها بودند و اونها رو می به همدیگه می نگاه کنید گروه عظیمی از مایی ها اونها نمیدونستند که این مایی به طرف قصر ملکی می رن. اما خب ساکنان خشکی نمی دونن در زیر دریا چی میگذره. یقیناً ماهی کوچولوی تازه وارد هم چیزی نمی دونست. اون فقط یکی دونو ماهی زیبا رو که در عمق کمی از آب شنا می کردند و جلبک های دریایی خوش رنگ رو که شناور بودن دیده بود همه چیزی که اون دیده بود همین بود حالا وقتی که بیشتر توی آب فرو رفت چشماش چیزای عجیبی دید توده های لنگرهای بزرگ، مروارید، سنگهای با ارزش، جواهرات ها همه و همه در زیر دریا پراکنده شده بودند. اسکلت مرده ها هم اونجا بود و موجودات سفید درازی که هرگز رنگ خورشید را ندیده بودند، چون در شکاف صخره‌ها که خورشید به اون راهی نداشت قرار داشتند. اول ماهی کوچولو ما احساس کرد که کور شده، اما کم کم بعد از چند ساعت شنا کردن تونست اشیار رو در اون محیط نیمه تاریک تشخیص بده و همه چیز در برابر چشماش نمایان شد. ماهی بزرگ که به پایین سمت دره عمیقی میرفت، آخه دریا هم مثل خشکی کوهها و در راه های خاص خودش رو داره. فریاد زد. بالاخره رسیدیم. این قصر ملکه مایی هاست. فکر می کنم که باید اعتراف کنم که امپراتور چیزی به اون زیبایی نداره. ماهی کوچولو خسته تلاش برای شنا کردن پا به پای دیگر ماهیها نفس نفس زنان برای تعریف از قصر گفت به راستی که زیباست دیوارها از جنس مرجان صورتی رنگ و مات بودند که آب اونها رو سیقل داده بود و اطراف پنجره ها رو ردیف های از مروارید گرفته بود درهای بزرگ باز بودند و لشکر مایی ها همگی به تالار شرفیابی شدند ملکه که نیمی از بدنش بدن زن بود روی تختی از جنس صدف سبز و آبی نشسته بود. ملکه به ماهی کوچولو که با فشار سایر ماهی ها جلو اومده بود گفت تو کی هستی و از کجا میای؟ ماهی کوچولو با صدایی آرام و لرزان داستانش را تعریف کرد. وقتی داستانش تموم شد، ملکه گفت من هم زمانی انسان بودم و پدرم پادشاه کشور بزرگی بود. شوهری برام پیدا شد و در روز عروسی مادرم تاجش رو بر سر من گذاشت و به من گفت که تا زمانی که اون رو روی سرم داشته باشم ملکه هستم. چند ماه مثل بقیه دختران شاد بودم. مخصوصا وقتی که صاحب پسر پچوری شدم که میتونستم با اون بازی کنم. اما یک روز صبح وقتی که داشتم توی باغهام گردش میکردم گولی ظاهر شد و تاج رو از سر من قاپید. اون در حالی که منو میبست گفت که قصد داره اون تاج رو به دخترش بده و شوهرم شاهزاده رو جادو کنه تا اون نتونه متوجه تفاوت ما دو نفر با هم بشه از اون موقع تا به حال اون دختر جای منو گرفته و به جای من ملکه شده من به قدری احساس بدبختی میکردم که خودم رو توی دریا انداختم و ندیمه که من رو خیلی دوست داشتن گفتم که اونا هم میخوان بمیرن اما در عوض جادوگری که دلش به حال سرنوشت من سوخته بود همه ما رو تبدیل به ماهی کرد اما به من اجازه داد چهره و بدن یک زن رو داشته باشم ما اینقدر به همین حالت باقی میمونیم تا اینکه کسی تاج من رو دوباره برام بیاره ماهی کوچولو که حاضر بود برای برگشتن به خشکی هر قولی بده فریاد زد اگه به من راهش رو بگید اون رو براتون میارم ملکه در جواب گفت بله به تو خواهم گفت که چی کار کنی؟ اون لحظه ساکت موند و بعد ادامه داد اگر توصیه من رو به کار ببندی هیچ خطری وجود نخواهد داشت. اول تو باید به خشکی برگردی و به نوک کوه بلندی که قول قلعش رو اونجا بنا کرده بری. اون رو میبینی که روی پله ها نشسته و برای دخترش گریه میکنه چون زمانی که شاهزاده به شکار رفته بود اون دختر مرد. در آخرین لحظه اون تاج من رو به وسیله یه نوکری وفادار برای پدرش فرستاد اما به تو هشدار میدم که مواظب باشی چون اگه قول تو رو ببینه ممکنه تو رو بکشه بنابراین من به تو این قدرت رو میدم که خودت رو به شکل هر موجودی که بتونه جانت رو نجات بده در بیاری فقط باید ضربه به پیشانیت بزنی و نام اون موجود رو بر زبان بیاری این بار سفر به خشکی کوتاه از قبل به نظر میرسید وقتی ماهی به ساحر رسید با دومش ضربه محکمی به پیشونیش زد و فریاد کشید میخوام گوزن بشم. در یک لحظه اون بدن کوچیک لاغر ناپدید شد و به جای اون جانور زیبا با شاخهای در هم پیچیده و پاهای کشیده که مشتاق دویدن بود ظاهر شد. گوزن سرش رو بالا گرفت و در حالی که هوا رو به داخل بینیش میکشید شروع به دویدن کرد. و براحتی از روی ها و دیوارهایی که سر راهش بود میپرید. اتفاقاً پسر پادشاه از سپیددم برای شکار اومده بود، اما چیزی شکار نکرده بود. وقتی که در زیر درختی داشت استراحت کرد، گوز سر راهش سبز شد. پسر پادشاه تصمیم گرفت اون حیون رو به دست بیاره. اون روی اسبش که مثل باد سرعت داشت پرید و از اونجا که شاهزاده قبلاً زیاد در جنگل شکار کرده بود، تمام راه های رو میشناخت. بنابراین به حیوان که از خستگی نفس نفس میزد رسید. گوز در حالی که عشق توی چشماش میدرخشید رو به شاهزاده کرده گفت به من لطف کن بگذار برم. منو نکش. چون باید تا دور برم و کلی کار انجام بدم. شاهزاده که از شدت حیرت زبانش بند اومده بود فقط به حیوان نگاه کرد. گوز از دیوار بعدی هم گذشت و خیلی زود از دیدرس خارج شد. شاهزاده که سوار اسب شده بود و نمیخواست حیوان رو دنبال کنه با خودش فکر کرد اون حیوان نمیتونه یک گوزن واقعی باشه چون هیچ گوزنی این چنین چشم‌هایی نداره. باید دوشیزه‌ای باشه که تلسم شده. من فقط با اون عروسی میکنم نه با کس دیگه ای. به این ترتیب در حالی که سر اسبش رو میچرخوند به آرامی به قصرش رفت. در حالی که کاملا از نفس افتاده بود به قلعه غور رسید و با دیدن دیوارهای بلند و صاف اطراف قصر دلش فرو ریخت بعد جرعت خودش رو پیدا کرد و فریاد زد میخوام مورچه بشم در یک لحظه اون شاخهای در هم پیچیده و بدن زیبا ناپدید شد و یک مورچه کوچیک قهوه‌ای که اگه کسی از نزدیک نگاه نمی‌کرد قادر به دیدنش نبود شروع به بالا رفتن از دیوار کرد واقعا سرعت اون موجود کوچیک عجیب و باور نکردنی بود دیوار در مقابل جه کوچیک اون کیلومترها ارتفاع داشت با این حال در مدت زمانی بسیار کوتاه اون به بالای دیوار رسید و از اون طرف به طرف پایین و حیات سرازیر شد در اونجا لحظه ای صبر کرد تا نقشه بعدیش رو طراحی کنه وقتی که به اطرافش نگاه کرد دید که در کنار یکی از دیوارها درختی رویده که گوشه اون پنجرهای قرار داشت که همسطح آخرین شاخه بالای درخت بود مورچه فریاد زد میخوام میمون بشم در یک چشم برهم زدن میمونی از شاخه های بالای درخت آویزون شد و به داخل اتاقی که قول در اون مشغول خورناس کشیدن بود رفت میمون فکر کرد شاید با دیدن من چنان وحشت زده بشه که بمیره و هیچ وقت دستم به تاج نرسه. بهتر خودم رو به شکل یک حیوان دیگه در بیارم اون به آرامی صدا زد میخوام توتی بشم. بعد یک توطی صورتی و خاکستری رنگ به قول نزدیک شد قول داشت بدن خودش رو کش و قوس میداد و خمیازه میکشید که قلعه رو میلرزوند توتی قدری صبر کرد تا اینکه قول کاملا بیدار شد بعد با جسارت گفت که اون رو فرستادند تا تاج رو که دیگه به قول تعلق نداره با خودش ببره چون دخترش که ملکی بوده حالا مرده با شنیدن این حرف قول با نعره‌ای از سر خشم از بستر بلند شد و به سمت توتی جهید تا گردنش رو با دست‌های نیرومندش فشار بده اما پرنده چابکتر از اون بود و در حالی که به پشت قور رفته بود ازش خواهش کرد که صبر داشته باشه چون مرگ اون پرنده فایدهای به حالش نداشت قول جواب داد، صحیح، اما اینقدر احمق نیستم که اون تاج رو بی خود به تو بدم. بذار فکر کنم تا چه چیزی در مقابل اون بگیرم. اون چند دقیقه سر بزرگش رو خارون چون قول ها همیشه کنزن هستند. بعد در حالی که چشماش برق میزد گفت، آه بله خودشه، اگر توقی از سنگهای آبی رنگ تاق سن مارتین برام بیاری، تاج رو به تو میدم. وقتی که توتی یک دختر بود قالبا تعریف این تاقش گفت انگیز و سنگا و مرمرهای گرانبهایی هایی رو که در اون به کار رفته بود شنیده بود ظاهرا جدا کردن اونها از اون ساختمون کار بسیار دشواری بود اما همه چیز تا به حال خوب پیش رفته بود و اون باید نهایت تلاش خودش رو میکرد به همین خاطر سری در مقابل قول فرود آورد و از بین پنجره بیرون رفت تا قول اون رو نبینه بعد به سرعت صدا زد میخوام اقاب بشم. در یک لحظه قبل از اینکه حتی به درخت برسه احساس کرد که بالهای قوی اون رو بالا بردن و حتی اگر میخواست به ها هم بره این بالها میتونستن اون رو به اونجا ببرن. اون که در آسمان مثل لکه کوچکی به نظر می میرسید اونقدر پرواز کرد تا اینکه تاق سن مارتین رو که نور بر برون میتابید در زیر پاهاش دید. بعد پایین رفت و خودش رو در گوشه‌ای پنهان کرد طوری که کسی اون رو نمیدید بعد شروع به بیرون آوردن نزدیکترین های آبی رنگ با منقارش کرد این کار دشوارتر از چیزی بود که انتظارش رو داشت اما بالاخره موفق شد و امید به دلش راه پیدا کرد بعد ریسمانی رو که از درختی آویزان بود برداشت و در حالی که روی زمین مینشست شروع به ریسمان کشیدن سنگ ها کرد وقتی که گرد کامل شد اون رو دور گردنش انداخت و صدا زد میخوام توتی بشم. کمی بعد توتی صورتی و خاکستری رنگ در مقابل قول ایستاده بود. توتی گفت این هم گردنمندی که میخواستی. وقتی که قول اون همه سنگهای آبی رنگ رو در دستاش گرفت چشمهاش درخشید اما با همه این حرفها اون قصد نداشت تاج رو تحویل بده. غرغر کنان گفت اینا اونقدر که من انتظار داشتم آبی نیستن. پس باید در مقابل تاجی که اینقدر مشتاق اون هستی، چیز ای برام بیاری. اگه نتونی این کار رو بکنی، نه تنها تاج، بلکه جونت رو هم از دست خواهی داد. البته توتی میدونست که قرض زدن قول بیجاست و اون واقعیت رو نمیگه. با این حال پرسید: این دفعه چی میخوای؟ قول جواب داد: اگه تاجم رو بهت بدم، باید تاج دیگه ای که از اون زیباتر داشته باشم. این دفعه باید تاجی از ستارگان رو برام بیاری. توتی برگشت و به محض خارج شدن زیر لب گفت میخوام وزق بشم وقتی که به شکل وزغ درومد، به جستجوی تاج پر ستاره رفت هنوز چندان دور نشده بود که به حوض تمیزی رسید که تصویر ستارگان انقدر با درخشندگی در اونجا منعکس شده بود که انگار واقعی هستند و میشه به اونها دست زد اون خم شد و کیسه ای رو که با خودش آورده بود پر از آب زلال کرد و وقتی که به قلعه برگش از تصویر اون ستاره ها تاجی درست کرد. بعد مثل قبل فریاد زد میخوام توتی بشم. اون در حیبت توتی به نزد قور رفت و گفت این هم تاجی که خواسته بودی. این بار قول نتونست جلوی خودش رو بگیره و زبان به تحسین باز کرد. اون میدونست که شکست خورده و در حالی که تاج ستارگان رو در دستاش رو به دختر کرد و گفت قدرت تو بیشتر از منه. تاج رو بگیر. تو اون رو منصفانه بردی. لازم نبود این حرف برای توتی تکرار بشه اون در حالی که تاج رو گرفته بود از پنجره بیرون پرید و فریاد زد میخوام میمون بشم اون تبدیل به میمون شد و در کمتر از نیم دقیقه از درخت پایین اومد و به حیات رفت وقتی که پاش به زمین رسید دوباره گفت میخوام خام بشم مورچه کوچولو فورا شروع به بالا رفتن از دیوار کرد و وقتی از قلعه غور خارج شد خیلی خوشحال بود اون تاج رو که برای یک انسان وچش اما برای یک مورچه کاملا بزرگ بود محکم گرفت و گفت میخوام گوزن بشم یقینا هرگز هیچ گوزنی در سرعت به پای اون نرسیده بود اون رفت و رفت از رودخون ها گذشت براهای پر پیچ و های پرپیچ و خم رو پشت سر گذاشت، تا به دریا رسید اینجا برای آخرین بار فریاد زد میخوام ماهی بشم اون در آب پرید و اونقدر شنا کرد تا اینکه به قصری که ملکه و همه ماهی ها اونجا جمع شد و انتظارش رو میکشیدن رسید. همونطور که همیشه برای افراد چشم انتظار زمان به کندی میگذرد، ساعتها پس از رفتن اون برای مایی ها بسیار آهسته سپری شده بود و بسیاری از اونها امید خودشون رو از دست داده بودن. موجود کوچک زیبایی که با هر حرکتی که به بدنش میداد، رنگش تغییر میدر، برزد، من از انتظار کشیدن در اینجا خسته شدم میخوام ببینم در دنیای بالا چی میگذره باید ماه ها از رفتن اون ماهی گذشته باشه یکی دیگه گفت پار خیلی دشواری بود قول حتما اونو کشته و وگرنه باید خیلی زودتر از اینا برمیگشت سهممی زیر لب گفت مگس های جوان به زودی میان و ماه رودخونه اونا رو میخورن خیلی وحشتناکه یک دفعه صدایی از پشت سر بلند شد نگاه کنید نگاه کنید اون جسم درخشانی که به سرعت به سمت میاد چیه؟ ملکه که بسیار حیجان زده شده بود از جابا بلند شد و روی دومش ایستاد سکوت در جمع فرما شد حتی کسایی که تا چند لحظه پیش شکاکیت می‌کردندم ساکت شدند و مثل بقیه به اون صحنه خیره شدند ماهی در حالی که تاج رو محکم در دهانش گرفته بود نزدیک و نزدیکتر اومد و بقیه به کناری رفتن تا راه رو براش باز کنند ماهی مستقیما پیش ملکه رفت و ملکه خم شد تاج رو برداشت و اون رو بر سرش گذاشت بعد اتفاق فوق‌العاده‌ای روی داد. دومش جدا شد و به جای اون یک جفت پای زیبا که در دنیا نظیر نداشت ظاهر شد. در همین موقع فلس مایی ها که در واقع ندیمه های ملکه بودند افتاد و اونها دوباره تبدیل به دختر شدند. اونها اول به سمت همدیگه چرخیدند و همدیگر را نگاه کردند. بعد به طرف ماهی کوچولو رفتند و گفتند که تو خیلی زیبایی. تون ماهی کوچولو هم به شکل واقعی خودش برگشته بود اونها فریاد زدن این تو بودی که زندگی ما رو به ما برگردوندی تو تو. و از شادی به گریه افتادند. به این ترتیب همه اونها به خشکی و قصر ملکه رفتند و قصری رو که در زیر دریا قرار داشت کاملا از یاد بردن اما اونها مدت زمان طولانی از خشکی دور بودند و تغییرات بسیاری در اون مشاهده کردند. شاهزاده همسر ملکه چند سال قبل مرده بود و به جای اون پسرش که بزرگ شده بود فرمان روایی میکرد. حتی با وجود شادی اون از دن دوباره مادرش قم در چهرهش مشخص بود و بالاخره ملکه که دیگه نتونستاقت بیاره از پسرش خواهش کرد که با اون به باغ بره. اونها با هم در زیر آلاچقی از گلهای یاز که ملکه ساعتها در زمانی که عروس شده بود در اونجا به سرون برد نشستن و ملکی دست پسرش رو گرفته و بهش التماس کرد که علت اندوهش رو بگه. ملکی گفت: شاید کاری از دست من ساخته باشه تا شادی رو بهت برگردونم. شاهزاده جواب داد: فایده ای نداره. هیچکس نمیتونه کمکم کنه. باید به تنهایی اون رو تحمل کنم. ملکه اصرار کرد: پس دست کم منو در غمت سهم کن. شاهزاده گفت: هیچکس کاری نمیتونه بکنه. من عاشق چیزی شدم که هرگز نمیتونم باش عروسی کنم و باید تا جایی که میتونم با این غم کنار بیام ملکه جواب داد شاید اونطورم که فکر میکنی غیر ممکن نباشه در هر صورت به من بگو لحظه بین اونها سکوت هک فرما شد بعد شاهزاده در حالی که صورتشو برگردنده بود به آرامی جواب داد من عاشق یک گوزن زیبا شدم ملکه با شادی گفت آه که اینطور اون جسته و غریخته برای شاهزاده تعریف کرد که همانطور که حد زده بود اون گوز در واقع درواقع ای بود که جادو شده بود و تاج رو برای ملکه اوورد و اون رو به خونه و مردمش برگردونده ملکه اضافه کرد اون همینجا در قصر منه تو رو پیشش میبرم وقتی شاهزاده با دختر زیبا که زیباتر از اون چیزی که در رویاهاش تصور میکرد دید صبر و قرارش رو از دست داد و سرش رو مقابلش خم کرد بعد دختر جلو اومد و وقتی که شاهزاده بهش نگاه کرد، دید که چشماش چشمای همون گوزنیه که اون روز در جنگل دیده بود. دختر آهسته گفت به من لطف کن، بگذار برم، منو نکش. شاهزاده حرف های دختر رو به خاطر اوورد و قلبش از شادی لبریز شد. مادرش هم اون دوتا رو تماشا کرد و لبخند زد. کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلاش مهران دوستی تی نشانی وبلاگ ما ام s t مهران دوستی کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد استانی